فصل سیزده در این فکر بودم که آیا برای بار دوم آب وان را عوض بکنم یا نه آب وان سرد شده بود حس کردم که باید بیرون بیایم همام زانویم را خوب نکرده بود زانویم دوباره ورم کرده و کرخت شده بود وقتی میخواستم از وان بیرون بیایم لیز خوردم و نزدیک بوتر روی کاشی‌های زیبای کف همام زمین بخورم میخواستم فوراً به تسونارا تلفن کنم و به او پیشنهاد کنم برایم کاری در یک دسته آرتیستی پیدا کند خودم را خوش کردم سیگاری روشن کردم و توی آینه خودم را برانداز کردم لاغر شده بودم وقتی تلفن زنگ زد یک لحظه آرزو کردم کاش ماری باشد اما این صدای تلفن ماری نبود ممکن بود لعو باشد. لنگان لنگان خود را به اتاق نشیمن رساندم. گوشی را برداشتم و گفتم: "الو، بفرمایید." صدای زومرویلد را شنیدم که گفت: "ها، امیدوارم هنگام تمرین پشتک دو وارو مزاحمتان نشده باشم." با عصبانیت گفتم: "من هنرمند سیرک نیستم، دلغکم. این دو با هم فرق دارد. کم کمش همان فرقی که بین یک ژوزویت با یک دومینیکن هست و اگر اینجا چیز دوغلویی وجود داشته باشد، قتل دوغلوست." خندید. شنیر شنیر من برای شما سخت ناراحتم گویا شما به بن آمدید که با تلفن به همه ما اعلان جنگ کنید گفتم من به شما تلفن کردم یا شما به من گفت مگر فرق میکند ماندم گفت میدانم شما از من خوشتان نمیآید ولی شاید باور نکنید اما من از شما خوشم میآید و شما باید به من حق بدهید که مطابق با اصولی که به آنها معتقد و نماینده آن هستم عمل کنم گفتم و در صورت لزوم با اعمال زور، گفت، آو نه، صدایش تنین صافی داشت، نه با زور، با قاطعیت، همانطور که شخصی که جریان مربوط به اوست باید انتظار داشته باشد، گفتم، چرا میگویید شخصی؟ بگویید ماری، گفت، چون میخواهم موضوع را تا آنجا که ممکن است شخصی نکنم، گفتم، این بزرگترین اشتباه شماست، آقای کشیش، جریان انقدر شخصی هست که نمیتوان شخصی تر از آن را تصور کرد. سردم بود و هوای حمام گرمم نمی کرد سیگارم خیس شده بود و خوب سوخت گفتم اگر ماری برنگردد نه تنها شما بلکه تسوفن را هم خواهم کشت. ناراحت گفت: او خدای من، هریبرت را وارد این ماجرا نکنید. گفتم شما واقعا آدم شوخی هستید. یک نفر زنم را از چنگم درآورده و درست همین شخص را باید کنار بگذارم؟ گفت: او یک نفر نیست و با بقیه فرق دارد دو چیز درکم هم زن شما نبود و او هم ایشان را از چنگ شما بیرون نیاورده بلکه خود ایشان رفته اند گفتم در صلح و آرامش کامل؟ گفت بله در صلح کامل شاید هم در جدالی میان طبیعت و ماورا و طبیعه گفتم در این موقعیت ماورا و طبیعه دیگر چه سیغه است. با گفت شنیر من ایمان دارم که شما دلغک خوبی هستید ولی از الهیات سردر نمی آورید گفتم همینقدر از آن سردر در آورم که شما کاتولیک ها در مقابل آدم بیدینی مثل من همان قدر سختگیر هستید که یهودیان در مقابل مسیحیان و مسیحیان در مقابل کافران من دائم از شما قانون و الهیات می و این دارا سر کاغذ پارهی می گویید که دولت باید صادر کند گفت شما علت ریشهای و علت ظاهری را با هم اشتباه گرفته اید من شما را درک می کنم شنیر من موقعیت شما را خوب درک می کنم گفتم شما هیچ چیزی را درک نمی کنید و نتیجه این نفهمی زنای دو یکی وقتی ماری با هریبرت شما عروسی کند و دیگری وقتی که پیش من برگردد گویا من به اندازه کافی حساس و هنرمند و به خصوص مسیحی نیستم که یک کشیش به من بگوید شنیر بهتر بود همین طور با او زندگی می کردید. گفت، شما اختلاف میان مورد خودتان با موردی که زمانی در بارش بحث را متوجه نشده اید پرسیدم کدام اختلاف؟ حتما این که به حساس حساستر از من و برای اتحادیتان یک لوکوموتیو ایمان است گفت، نه، او واقعا خندید <تصفيق> نه، اختلاف یک اختلاف حقوقی کلیسایی است او با یک زن طلاق گرفته زندگی می کرد که ازدواج با او از نظر کلیسا غیر ممکن است در حالی که شما با دوشیز درکم زندگی می کردید که مطلقه نبود و هیچ مانعی بر سر راه ازدواجش وجود نداشت گفتم من حاضر بودم امضا کنم حتی حاضر بودم کاتولیک شوم. گفت بله ولی به شکلی مسخره و مصنوعی گفتم انتظار دارید در بیان احساس هم چاپلوسی و تظاهر کنم؟ اگر شما اینقدر پایبند حقوق و قوانین هستید، آن هم در ظاهر چطور احساس من برایتان مهم است و مرا به بی احساسی متهم می کنید؟ گفت، من به هیچ دلیلی شما را متهم نمی کنم سکوت کردم، حق و او بود و آگاهی و آن دردناک ماری رفته بود و طبیعی است که آنها با آغوش باز از او استقبال کنند اگر میخواست کنار من بماند، هیچ کس نمیتوانست او را وادار به رفتن کند. زمرویل گفت هلو، شنیر، هنوز پای تلفن هستید؟ گفتم بله هم. هنوز گوشی دستم است. من صحبت تلفنی و او را طوری دیگر تصور میکردم. میخواستم ساعت دو و نیمه بعد از نیمه شب او را از رختخواب بیرون بکشم، به او ناسزا بگویم و او را تهدید کنم. با لحنی آرام پرسید و چه کار می توانم برایتان بکنم؟ گفتم هیچ تنها این را باور می کنم که بگویید هدف از کنفرانس های مخفیانه ی هتل هانوفر این بود که ماری را تشویق کنید تا به من وفادار بماند و باور می کنم که میخواهید از صمیم قلب کاری برای من انجام دهید. گفت شک ندارم که شما شنیر به این نکته توجه ندارید که رابطه دوشیز دورکم با شما در حالتی بحرانی بود. گفتم و شماها فرصت را غنیمت شمردید و به او مفری، حقوقی و کلیسایی نشان دادید تا از من جدا شود. من همیشه فکر می کردم کلیسای کاتولیک مخالف طلاق است. فریاد زد. آه لعنت بر شیطان شنیر شما که نمی از یک کشیش کاتولیک توقع داشته باشید که یک زن را مجبور کند بدون اینکه ازدواج کرده باشد با یک مرد زندگی کند؟ گفتم چرا نتوانید؟ شما او را به بدکاری یا زنا مجبور کردید اگر به عنوان یک کشیش می توانید مسئولیت این کار را به عهده بگیرید می توانستید آن مسئولیت را هم به دوش بگیرید گفت این زدیت شما با کلیسا مرا به حیرت می اندازد من فکر می کردم تنها کاتولیک های سادلو اینطور هستند گفتم خیال بیخود خود نکنید من به هیچ وجه زد کلیسا نیستم من ضد زمرویت هستم چون شما بدجنسی و د گفت آ خداوندا آخر چرا گفتم وقتی آدم وضع شما را میشنود خیال میکند قلبتان وسعت یک بادبان را دارد آن وقت پنهانی توی های هتل حرفهای درگوشی می میزنید و توطعه می کنید وقتی من عرق می میریزم تا یک لغم نان به دست بیاورم شما با زن من حرف میزنید و سعی میکنید او را از من دور کنید بدون اینکه حرفهای مرا بشنوید بله بعد جنس و دروید و از یک هنرشناس نمیشود توقع دیگری هم داشت گفت هرقدر دلتان میخواهد ناسزا بگویید، بفرمایید به من بد کنید، من وضع شما را خوب درک می کنم. گفتم، شما وضع مرا درک نمیکنید. شما یک معجون لعنتی از مزخرفاتتان به خورد ماری داده اید تا او را از من جدا و به زنا بکشانید، ولی من عرق خالص سیب زمینی را به آن کنیا که مزخرف شما ترجیح می دهم گفت، هرچه دلتان می بگویید، به نظر می رسد دارید حرف دلتان را گفتم آقای کشیش همین طور است حرف دلم است چون مربوط به ماریست گفت روزی میرسد که شما متوجه خواهید شد در حق من بدی کردید هم در این مورد هم در مسائل دیگر صدایش رنگ ناله و ندبه به خود گرفت و اما در مورد آن معجون شاید بد نباشد بدانید که انسانهای تشنگی هستند که کنیاک تقلبی را به کشیدن رنج تشنگی ترجیح میدهند گفتم ولی در کتاب مقدس صحبت از آب پاک و روان است چرا آن را به مردم نمی دهید؟ گفت شاید با صدایی لرزان ادامه داد شاید چون من سر همان قیاس شما می مانیم. چون من در انتهای یک زنجیر طویل ایستاده که آب را از چشم برمیدارد. من شاید نفر صدم یا هزارم این زنجیر هستم و آبی که به دست من میرسد دیگر زلال و پاک نیست و یک مطلب دیگر شنیر گوش میدهید؟ گفتم گوش میدهم. گفت شما میتوانید یک زن را بدون اینکه با او زندگی کنید دوست داشته باشید؟ گفتم ها عجب لابد حالا میخواید صحبت را به مریم باکره بکشانید؟ گفت مسخره گی نکنید شنیر این رفتار مناسب شخصیت شما نیست. گفتم من چیزی را مسخره نمیکنم این توان را در خود می بینم که به چیزی که نمیتوانم درکش کنم احترام بگذارم من فقط میگویم سرمشق، قرار دادن مریم باکره برای دختر جوانی که نمیخواهد راهه بشود اشتباهی وحشتناک است من حتی در این باره سخرانی گفت هم. عجا کجا؟ گفتم همینجا در بان برای دختران جوان گروه ماری از کلن آمده بودم. بعد از اجرای چند نمایش برای دخترها با آنها درباره مریم باکر صحبت کردم. علی جناب، می توانید از مانیکا زیلز بپرسید. البته نمیتوانستم برای دخترها درباره چیزی حرف بزنم که شما آن را طلب جسمانی مینامید. هنوز گوش میدهید؟ گفت مم. گوش میدهم و تعجب میکنم شنیر که چون این صریح و بی حرف میزنید. گفتم ای داد عالی جناب عملی که منجر به تولید بچه می شود عملی سریح و بیپرده است ولی اگر دلتان بخواهد می توانیم درباره ها صحبت کنیم آنچه که شما درباره این عمل سریح زیر گوش مردم می خوانید چیزی جز ریا و حق بازی نیست امثال شما در ته قلبتان این عمل را به عنوان یک کسافتکاری خلاف قانون و اخلاق میدانید که برای بقای نسل لازم به نظر می آید و با این خیال واهی نیاز جسمی را از جنبه دیگر این رابطه که با آن ارتباطی تنگاتنگ و, تنگ و عمیق دارد و از نیاز جسمی پیچیدهتر هم هست جدا کرده اید اما حتی زنی که دیگر به اجبار تن به خواسته مردش میدهد یا دائم الخمری که پیش یک فاحشه میرود فقط جسم نیست در وجود آنها چیزی وجود دارد که در ارتباط با جسم چیزی دیگر به وجود می آورد. چیزی که شما قادر به درک چند و چون آن نیستید شماها با این موضوع مثل فشفشه جشن شب سال نو برخورد کنید در حالی که دینامیت است گفت آجواج مانده بود. گفت تصور اینکه شما تا کجا درباره این موضوع فکر کرده اید برایم شگفت‌آور است فریاد زدم شگفتاور شما بهتر است از عمل سکهای بیفکری که زنانشان را ملک قانونی خود میدانند شگفت زده شوید از مونیکا زیلز بپرسید که آن موقع چه چیزها در این باره برای دخترها گفتم از زمانی که فهمیدم از جنس مرد هستم درباره هیچ چیز به این اندازه فکر نکردم این برای شما شگفت انگیز است؟ گفت مثل خیلی چیزهای دیگر شما حتی به اندازه سرسوزنی از حق و قانون سردر نمیآورید این چیزها هرقدر هم بغرنج باشند باید تحت نظم و مقرراتی قرار بگیرند گفتم بله از مقررات شما چیزکی میدانم. شماها طبیعت را روی ریل زناکاری میاندازید و وحشت زده میشوید که چطور سر از زندگی زناشویی در آورده هست و آن وقت است که شروع به گفتن مزخرفاتی چون اعتراف و بخشش و گناه میکنید و در واقع به همه چیز با پوشش این کلمات نظم ترتیب خاصی میبخشید خنده زورکی کرد و گفت شنیر حالا میفهمم که شما چه وضعی دارید اینطور که معلوم است شما مثل یک خر؟ تک همسری پیشه کرده اید گفتم شما حتی حیوان شناسی سرتان نمی نمیشه چه برسد به شناخت انسان متفکر خر هرچند آرام و مطیع به نظر میرسد اما به هیچ وجه تک همسر نیست در خرها هر مرج جنسی رواج دارد ولی کلاخها، زاقچه ماهیهای ماهی آبنوس و در بعضی مواقع کرگدن تک همسر هستند گفت اینطور که معلوم است ماری جزو هیچ یک از اینها نیست متوجه شد که این جمله کوچک تا چه حد مرا رنجاند برای همین به آرامی ادامه داد شنیر من خیلی متاسفم دلم نمیخواست این حرف را بزنم حرفم را باور میکنید چیزی نگفتم تحسیگارم را به زمین توف کردم و دیدم که آتش روی غالی تقسیم شد و سوراخهای سیاه و کوچکی روی آن ایجاد کرد با لحنی التماس همیز فریاد زد شنیعر حتی باور کنید که از ته دل این را به شما نگفتم گفتم برای تان اینقدر مهم است که باور کنم یا نکنم باشد باور میکنم گفت شما همین حالا درباره طبیعت حرف زدید شما باید از طبیعتتان تان پیروی میکردید دنبال ماری میرفتید و به خاطرش مبارزه میکردید گفتم مبارزه؟ این لغت در کجای قوانین لعنتی زناشویتان وجود دارد؟ گفت رابطه شما با دوشیز درکم رابطه زناشویی نبود گفتم باشد باشد حرفی ندارم زناشویی نبود اما من هر روز سعی کردم به او تلفن کنم و هر روز به اون نامه نوشتم گفت میدانم میدانم حالا دیگر خیلی دیر شده است گفتم و دیگر راهی جز زناکاری آشکار باقی نمانده گفت شما کاری از دستتان بر نمی آید من شما را خیلی بهتر از آنچه تصور می کنید می شناسم. شما می توانید هرقدر دلتان بخواهد ناسزا بگویید و مرا تهدید کنید. به شما میگویم و چیز در وجودتان این است که شما انسانی بیگناه و میخوا بگویم پاک هستید. آیا می توانم به شما کمک کنم منظورم سکوت کرد. پرسیدم منظورتان پول است؟ گفت مم. آن هم بله ولی منظورم کارتان بود گفتم شاید دوباره با شما صحبت کنم هم در مورد کار و هم پول اما حالا به من بگویید ماری کجاست صدای نفس کشیدنش را شنیدم و در میان سکوت برای اولین بار بوی چیزی به مشامم خورد بوی لطیف اتکولان کمی شراب قرمز و سیگار برگ آرام گفت به روم رفته اند با صدایی گرفته پرسیدم ماه اصل؟ گفت بله اسمش را ماه اصل گذاشته اند گفتم باشد تا بدین وسیله فاحشگی تکمیل گردد. و بدون اینکه تشکر یا خداحافظی کنم گوشی را گذاشتم. به سورا که آتش سیگار روی قالی به وجود آورده بود نگاه کردم. ولی خسته تر از آن بودم که بتوانم آنها را لگت کنم. احساس سرما می کردم و زانویم درد می کرد. بیش از اندازه در وان مانده بودم. ماری نمی خواست با من به روم برود. وقتی به او پیشنهاد کردم رنگش سرخ شد و گفت ایتالیا چرا؟ ولی روم نه. وقتی پرسیدم چرا نه؟ پرسید واقعا نمی گفتم نه. او هم دیگر در این باره با من صحبت نکرد. دلم میخواست با او به رم بروم و پاپ را ببینم. حاضر بودم ساعتها در میدان پتر انتظار بکشم و وقتی پاپ برابر پنجر ظاهر شد، دست بزنم و فریاد زنده بکشم. وقتی این را به ماری گفتم، تقریبا به خشم آمد و گفت اینکه آدمی بیاعتقاد مثل من میخواهد برای پاپ ابراز احساسات کند، به نظرش مزهک و گمراه کننده است. او حسابی حسود بود من اغلب این صفت را در کاتولیکها ها کردم آنها با خصت عجیبی گنجهایشان را شعائر دینی و پاپ را حفظ می کنند. از آن گذشته کتولیک ها مردمی هستند که می شناسم. آنها به همه چیز بدبینند به ویژه در مورد مسائلی که به کلیسا مربوط می شود. آنها از هر کسی که او را اندکی باهوش بدانند توقع دارند کاتولیک شود شاید ماری برای این نمیخواست با من به روم برود که از زندگی گناه آلودش با من خجالت میکشید. ماری در خیلی از مسائل سادگی بچگانهی داشت و زیاد هم باهوش نبود. رفتن او با تسوپنر به روم کاری بیرحمانه بود. مسلماً آنها به حضور پاپ شرف یاب میشدند و پاپ بیچاره به او دخترم و به تسوپنر پسر خوبم میگفت. بدون اینکه بداند در مقابل پایش یک زوج بدکار و زناکار زانو زدند. شاید هم به این خاطر با تسپنر به روم رفته است که آنجا هیچ خاطره ای با من نداشت ما با هم در ناپل ونیز و فلورانس بوده ایم و در پاریس و لندن و خیلی از شهرهای آلمان در روم میتواند از دست خاطرات در امان باشد و البته به اندازه کافی هوای کاتولیکی استنشاق کند صمیم گرفتم به زر تلفن کنم و به او بگویم که به خصوص این عمل او که مرا به خاطر تکم سر بودنم مسخره کرد کسیف می میدانم ولی تمام کاتولیک های تحصیل کرده و فرهنگ یک عادت زشت دیگر هم دارند آنها خود را پشت صدی از اعتقادات دینی مخفی و شروع به ساختن اصول می کنند ولی وقتی آدم آنها را با حقایق خط شناپذیرشان روبرو می کند لبخند میزنند و طبیعت انسانی را حواه میدنند و در صورت لزوم لبخند تمسخر آمیزی بر لب می آورند. گویی همکنون از نزد پاپ آمدهند و پاپ یک تکه از معصومیتش را به آنها داده است. در هر صورت وقتی آدم شروع کند حقایق عظیم و وحشتناک مذهبشان را جدی بگیرد یا به او بر چسب پرتستان بودن میزنند یا او را متهم به نادانی می کنند. وقتی به طور جدی با آنها درباره زناشویی صحبت میکنی، به فاصله هنری هشتمشان را علم کنند. با این توپ 300 سال است که شلیک کرده‌اند تا اعلام کنند که کلیسایشان چقدر سخت گیر است. ولی وقتی میخوان نشان دهند همین کلیسا تا چه حد انعطاف پذیر است و چه قلب رعوفی دارد، داستان بزوویتس را میگویند آنها هم فقط در دو مجلس آن هم فقط در مجالس خالی از اغیار خودشان چپ و راست بودن در این مورد تأثیری ندارد کافی است مجلسی از باسوادان و باهوشان باشد یک بار وقتی از زومرویلد خواستم داستان کشیش به بزوویتس را پشت میز خطابه برای مردم بگوید خشمگین شد از پشت میز خطابه وقتی موضوع بر سر زن و مرد است فقط با توپ اصلیشان شلیک میکنند. هنری هشتم یک امپراتوری برای یک ازدواج حق قانون اصل جزمی عقاید دینی به دلایل مختلف از لحاظ جسمی و روحی در وضع اصفباری بودم از لحاظ جسمی چون پس از آن سبحانه محقر در بخون فقط کنیاک نوشیده و سیگار کشیده بودم حالت تحوو داشتم از نظر روحی هم چون تجسم کردن تسافنر که چطور در یک هتل در روم لباس پوشیدن ماری را تماشا می کند برایم زجرآور بود شاید هم سراغ گنجی یه لباس های زیر ماری می رفت. این کاتولیک های باهوش طرفدار عدالت ادالت با بافرهنگ که فرقشان را از وسط باز می کنند احتیاج به زنان مهربان دارند ماری زنی نبود که به درد تسوبر بخورد آدمی مثل او که همیشه مرتب لباس می پوشید و لباسش تا آنجا مده روز است که نه قدیمی به نظر برسد و نه او را پیرو مد نشان دهد. کسی که صبح خودش را حسابی با آب سرد می و دندانهایش را چنان مسواک میزند زند که گویی به دنبال شکستن رکورد است. برای چنین کسی ماری بهقدر قدر کافی باهوش نیست. از آن گذشته ماری ها وقت زیادی صرف آرایش خود میکند. کند. از آن نوع هاییست که قبل از این که به حضور پاپ شرف یاب شود یک بار دیگر دست مال روی کفشایش می آه دل دلم به حال پاپ هم که آن دو جلویش زانو خواهند زد می سوزد او لبخند ای خواهد زد و از سمیم قلب از دیدن این زوج زیبا دوست داشتنی و کاتولیک آلمانی خوشحال خواهد شد تا یک بار دیگر کلاه سرش برود او از کجا باید بداند که برکتش را نسار دو کار می کند؟ به حمام رفتم با حول تنم را خشک کردم لباس پوشیدم به آشپزخانه رفتم و را روی اجاق گذاشتم مونیکا فکر همه چیز را کرده بود کبریت روی اجاق گاز بود قهوه سایده در قوطی با در محکم و کاغذ صافی کنارش ژامبون تخم مرغ و کنسرو سبزیجات هم در یخچال گذاشته بود من فقط وقتی کار آشپزخانه را با میل و رغبت انجام میدم که تنها راه نجاتم از وراجی بزرگ سالان باشد وقتی زومر ویلد از خدای عشق می زند بلوترت ساعت اسصد گفتن هایش را شروع می کند یا فرد بویل سخنرانیش را درباره کوکتو که زیرکانه از این جوانجا بر داشته و سرهم هم کرده ایراد می کند، آن وقت است که به آشپزخانه پناه میبرم. لوله مایونز را فشار میدهم زیتون ها را نصف می کنم و کالباس جگر را روی نان میمالم. وقتی میخواهم به تنهایی برای خودم چیزی در آشپزخانه سرهم کنم احساس از دست رفتگی می کنم. دستهایم از تنهایی ناشیانه عمل می‌کند و باز کردن در قوطی کنسرو یا شکستن تخم مرغ در تابه مرا به مالیخولیایی عمیق می‌کشاند. من آدم مجردی نیستم. وقتی ماری مریض بود یا کار می کرد، او مدتی در کل در یک مغازه نوشت افزار فروشی کار میکرد بدون شکایت در آشپزخانه کار میکردم حتی وقتی اولین بچه را سخت کرد قبل از اینکه صاحب خانه از سینما بیاید ملافه ها را شستم بالاخره موفق شدم بدون اینکه دستم را زخمی کنم در یک قوطی لوبیا را باز کنم و در حالی که آب جوش را روی صافی قهوه میریختم به خانه ای فکر کردم که تسوفرر برای خودش ساخته بود دو سال قبل یک بار به با آنجا رفته بوده هم